اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آمین به نام خداوند بخشنده بخشایشگرد آمین و الکتاب المبین سوگند به کتاب مبین. ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. که ما آن را قرآنی فسیح و عربی قرار دادیم. شاید شما درک کنید. و انه فی ملکیتاب لدينا لعلی حکیم. و آن در امل کتاب نزد ما بلند پایه و استوار است. آفنظر بعنكم صفح آیا این ذکر را از شما بازگیریم، به خاطر اینکه قومی اسراف کارید؟ و کم ارسلنا من نبی فی الاولین چه بسیار پیامبرانی که برای هدایت در میان اقوام پیشین فرستادیم وما یعطیه من نبی ولی هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر این که او را استهزامی کردند فأهلکنا اشد منهم بطشا و مضا و مثل الاولین ولی ما کسانی را که تر از آنها بودند حلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت وَإِن سألتهم من خلق السماوات يقولون لیقولن لیقولن خلقهن العزیز العليم هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است مسلما میگویند خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است الَّذی جعل الارض و جعل سبلا همان کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داده و برای شما در آن راههایی آفرید باشد که هدایت شوید من بقدر فأنشرنا فأنشرنا كذلك همان کسی که از آسمان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 و برای شما از کشکیها و چهار پایان مرکبهای قرار داد که بران سوار می شوید لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا سْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ تا بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگارتان را متذکر شوید و بگویید پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم و اننا الی ربنا قلبون و ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم له لكفور مبین آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند و ملائک را دختران خدا خواندند انسان کفران کننده آشکاری است ام اتخذ مما يخلق بنات بالبنين؟ آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده و پسران را برای شما برگزیده است وذ بشرحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا در حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه قرار داده به تولد دختر بشارت دهند صورتش از فرط ناراحتی سیاه می شود و خشمگین می گردند و من یونشع فی و مبین آیا کسی را که در لابلای زینت ها پرورش میابرد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست فرزند خدا میخانید و جعل هم عباد الرحمن اناثا اشهدون خلقهم ستکتب شهادتهم و يسألون. آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند مؤنس پنداشتند آیا شاهد آفرینش آنها بوده اند؟ گواهی آنان نوشته می شود و از آن بازخواست خواهند شد وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم من علم الا آنان گفتند اگر خداوند رحمان میخواست ما آنها را پرستش نمی کردین ولی به این امر هیچ گونه علم و یقین ندارند و جز دروغ چیزی نمیگویند أم هم كتابا من قبله فهم به مستمسكون یا <تصفيق> <تصفيق> اینکه ما کتابی پیش از این به آنان دادیم و آنها به آن تمسک می‌جویند بل قالوا ان وجدنا آباءنا على امه واننا و على آثارهم مهتدون بلکه آنها میگویند ما نیاکان خود را بر آینی یافتیم و ما نیز به پیروی آنان هدایت یافتیم و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریت من نذیر إلا قال مترفوها اِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّهِ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیام بر انذار کننده این نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مقرور آن گفتند ما پدران خود را بر آینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می‌کنیم. قالوا ان بما ارسلت به كافرون پیامبرشان گفت آیا اگر من آینی هدایت بخشتر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم باز هم انکار می‌کنید گفتند آری ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافریم فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم بنگر پایان کار تکثیب کنندگان چگونه بود و از قال ابراهیم لأبيه وقومه قومه ایننی مما تعبدون و به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم به پدرش و قومش گفت من از بیزارم که شما می پرستید بیزارم مگر آن کسی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرده وجعلها جعلها کلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون او کلمه توحید را کلمه پاینده ای در نسلهای بعد از خود قرار داد شاید به سوی خدا بازگردند بل متعت هؤلاء و حتی حتی جاءهم الحق و رسول مبین. ولی من این گروه و پدرانشان را از مواهب دنیا بحرمند ساختم تا حق و فرستاده آشکار الهی به سراغشان آمد ولمّا جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به كافرون هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند این سهر است و ما نسبت به آن کافرین وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ و ثروتمندی از این دو شهر مکه و تائف نازل نشده است؟ اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم معیشتهم في الحياة الدنيا و بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم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 و با هم تعاون نمایند و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری میکنند بهتر است ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعل لمن يكفر برحمان لبيوتهم سخفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهرون اگر تمكن کفار از مواهب مادی سبب نمیشد که همه مردم امت واحد گمراهی شوند ما برای کسانی که به خداوند رحمان کافر می‌شدند خانههایی قرار میدادیم با صق هایی از نقره و نردبان هایی که از آن بالا روند و, و, و برای خانه درها و تختهایی زیبا و نقره ای قرار میدادیم که بر آن تکیه کنند و زخرفا وإن كل ذلك لما متاعو الحیاة الدنیا والآخرة عند ربك للمتقین و انواع زیورها ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از پرهیزگاران است و من یعش عن ذکر رحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و هنکس از یاد خدا روی گردان شیطان را به سراغ او میفرستیم پس هموار قرین هم اوست است و این هم لیسدون هم السبیل و یحسبون ان مهتدون و آنها شیاطین این گروه را از راه خدا باز میدارند در حالی که گمان می هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بعد المشرقین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 انکم فی العذاب مشترکون ولی به آنها می هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد چرا که ظلم کردید و همه در عذاب مشترکید افا تسمع الصم او تهدی العمی و من کان في ضلال مبین؟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 أو نرینك الذی وعدناهم فإنا علیهم مقتدرون یا اگر زنده بمانی و آنچه را از عذاب به آنان بعد دادهایم به تو نشان دهیم باز ما بر آنها مثلتیم فاستمسك بالذی أوحی إلیك إنك على صراط مستقیم آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیمی و این نهوللت یک مایه یادآوری تو و ععم تو است و به زودی سوال خواهید شد. و اسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعل من دون الرحمن الهتين يعبدون از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم و لقد ارسلنا بِآيَاتِنَا بآیاتنا فِرْعَوْنَ فرعون و فَقَالَ فقال فقال رَبِّ رسول رب العالمین ما موسى با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم موسى به آنها گفت من فرستادی پروردگار جهانیانم فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ولی هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد، به آن میخندیدند وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَتٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ما هیچ آیه و ای به آنان نشان نمیدادیم، مگر اینکه از دیگری بزرگتر بود و آنها را به انواع عذاب گرفتار کردیم شاید بازگردند و قالوا یا ایها الساحر دعو لنا ربك بما عهد عندك اننا لا مهتدون وقتی گرفتار بلا می شدند می گفتند ای ساهر پروردگارت را به عهدی که با تو کرده بخوان تا ما را از این بلا برهاند که ما هدایت خواهیم یافت و ایمان می آوریم فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون اما هنگامی که عذاب را از آنها برطرف می‌ساختیم، پیمان خود را می‌شکستند. ونادا فرعون فی قومه قال قال یا قوم الیس لمی مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون فرعون در میان قوم خود نداداد و گفت ای قوم من آیا حکومت مصر از آن من نیست؟ و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمی بینید؟ مگر نه این است که من از این مردی که از خانواده و طبقه است و هرگز نمی تواند فسیح سخند بگوید برترم. فلولا القی علیه اسورت من ذهب جاء معه الملائکت مقترین اگر راست میگوید، چرا دست طلا طلاب او داده نشده یا اینکه چرا فرشتگان دوشا دوش او نیامده اند فاستخف قومهو فاطاعوه انهم كانوا قوما فرعون قوم خود را سبک شمرد در نتیجه از او اطاعت کردند آنان قومی فاسق بودند فلما اسفونا تنقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین اما هنگامی که ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرین و آنها را پیشگامان در عذاب و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم ولما ضرب بن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون و هنگامی که درباره فرزند مریم مصیبی زده شد ناگهان قوم تو به خاطر آن داد و فریاد راه انداختند و قالوا الهاتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم و پس گفتند آیا خدایان ما بهترند یا او اگر معبودان ما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 فقط بنده ای بود که ما نعمت به او بخشیدیم و او را نمونه و الگویی برای بنی اسرائیل قرار دادیم و, و هرگاه بخواهیم به جای شما در زمین فرشتگانی قرار می دهیم که جانشین شما گردند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 که این راه مستقیم است ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين و الشيطان شما را از راه خدا باز ندارد که او دشمن آشکار شماست ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة و لأبين لكم ولی ابین لکن بعضا لذی تختلفون فیه فاتقوا الله و و هنگامی که ایسا روشن برای آنها آورد گفت من برای شما حکمت آورده ام و آمده ام تا برخی از را که در آن اختلاف دارید روشن کنم پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت نمایید. ان الله هو ربی و فاعبدوه صراط مستقیم. خداوند پروردگار من و پروردگار شماست تنها او را پرستش کنید که راه راست همین است. فاختلف الاحزاب من بینهم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 هل ينظرون الا الساعه ان تات يوم وهم لا يشعرون ايات جزء اين انتظاری دارند که قیامت ناگهان به سراغشان آید در حالی که نمیفهمند الاخ لا يومئذ بعضهم لبعض عدون الا المتقين دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیزگاران یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون ای بندگان من امروز نه ترسی بر شماست و نه اندوهگین میشوید شوید الَّذِينَ آمَنُوا بِ آیَاتِنَا همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند ادخلوا الجنت انتم و ازواجكم تحبرون به آنها خطاب می شود شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید یطاف علیه بصحاف من ذهب و اكواب. و فيها ما تشتهیه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون این در است که ظرفها و جامهای طلایی را گرداگرد آنها میگردانند و در آن آنچه دلها میخواهد و چشمها از آن لذت میبرد موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند ودلک جتون اوری و موبی م قتون تعملون این بهشتی است که شما وارس آن میشوید به خاطر اعانی که انجام میدادید لفی فقیهتون کراتتون منه تقولون و در آن برای شما میوه های فراوان است که از آن میخورید ان المجرمن فی عذاب جهنم خالدون. ولی مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه میمانند لا یفتر عنهم وهم فیه مبرسون هرگز عذاب آنان تخفیف نمییابد و در آنجا از همه چیز معیوسند و ما ظلمناهم ولیکن کانوهم الظالمین ما به آنها ستم نچردیم آنان خود ستم بودند و نادو یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ما کسون و نادو یا مالک لیقض قال انكم ناكفون ونادوا يا مالك ليططى علينا رب قال انكم ناكفون انها فرياد میکشند ای مالی که دوزخ ای کاش پروردگارت ما را بمیراند تا آسوده شویم میگوید شما در اینجا ماندنی هستید لقد بالحق ولكن بالحق ما حق را برای شما آوردیم ولی بیشتر شما از حق کراهت داشتید ام ابرمو امرن مبرمون بلکه آنها تصمیم محکم بر توطعه گرفتند ما نیز اراده محکمی در آنها داریم ام یحسبون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم و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 اگر برای خداوند فرزندی بود من نخستین پرستنده او بودم. سبحان ربی والارض رب العرش عما یصفون است پروردگار آسمانها و زمین پروردگار عرش از توصیفی که آنها می‌کنند حتى يومهم آنان را به حال خود واگذار تا در باطل قوت ور باشند و سرگرم بازی شوند تا روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم او كسي است كدر آسمان معبود است ودر زمين معبود و او حكيم و عليم است وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما و وعنده و علم الساعه واليه ترجعون پر برکت و پایدار است کسی که حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است از آن اوست و آگاهی از قیام قیامت نزد اوست و به سوی او بازگردانده میشوید ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا, إلا من شهد بالحق وهم يعلمون کساني را که غیر از او ميخوانند قادر بر شفاعت نیستند مگر آنها که شهادت به حق داده اند و به خوبي آگاهند وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُعْفَكُونَ و اگر از آنها بپرسی چه کسی آنان را آفریده قطعا می گویند خدا پس چگونه از عبادت او منحرف می شوند و قیلی هی یا رب این يُؤْمِنُونَ آنها چگونه از شکایت پیامبر که میگوید پروردگارا اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند قافل می شوند عنهم و سلام فسوف يعلمون. پس اکنون که چونی نست از آنان روی برگردان و بگو سلام بر شما اما به زودی خواهند دانست